با مهرامی است در این درودها خدمت شما عزیزان همراه و همسفر با یکی دیگر از داستان‌های افسانه‌های جادوگری در خدمت شما هستم. این داستان کبوتر سفید. به نام خدا. در روزگاران یعنی دور پادشاهی دو پسر داشت، جسور و بی‌پروا، چنان که خادشا لحظه‌ای از دست اونها آسایش نداشت. اونها هر روز به فکر ماجراهای تازه و خطرهایی تازه بودند. مثل سود به بلندترین کوهها و شکار درنده‌ترین ببر‌ها و اسب سواری با اسب‌های وحشی و سرکش. اونها حتی به این ماجراها هم قانع نبودند. روزی اونا به فکر ماجرایی تازه افتادند. به همین دلیل به نزد پدرشون رفتند و گفتند ما همه کاری کردیم اما تا به حال در طوفان قایقرانی نکردیم. یکی از اونا گفت این بزرگترین آرزوی منه دیگری گفت این سفر برای ما ماجرای تازه و تجربه تازه خواهد داشت شاه با نگرانی پرسید شما تا به حال قایق سوار نشدید اگه قایقتون در طوفان غرق بشه چیکار میخواید بکنید چطوری میخواید خودتون رو نجات بدید پسرا در حالی که می‌خندیدند در تصمیم خودشون پافشاری کردن شاه که خوب میدونست حرف زدن با اونها فایده ای نداره به اونها اجازه داد که برن اونا معمولا در صفحه هاشون چیزی با خودشون بر نمی و فقط سوار اصف هاشون می شدند و به راه می آفتدن. این بارم بدون برداشتن وسیله روونه ساحل شدند و بعد از جستجوی بسیار قایق کهنه ماهیگیری پیری که از اونجا رفته بود رو پیدا کردن این قایق برای هدف مناسب بود برادر بزرگتر گفت اگه حرکت کنه ماجرهای تازهی رو در پیش خواهید داشت اونا مدتها به انتظار نشستند تا آسمون سیاه شد و عبری بزرگ و بارانی همه جا رو پوشوند بعد تندباد وزید و دریا طوفانی شد اون وقت اونا قایق رو به آب انداختند و در همین موقع بارون هم شروع شد اونها بدون توجه به بارون و پارو پارو می زدند و قایق رو به جلو می بردند. موجهای بلند و کفالود محکم با قایق اونها برخورد می کرد و پیراهنشون رو خیست می کرد. توفان هم ادامه داشت. اونا همچنان قایق کوچکیشون رو می و آب زیادی در قایق جمع شده بود و کم کم اون رو پر می کرد. بردر گفت برادر. می تونی شنا کنی؟ و هر دو از این حرف خندیدند اما به زودی خنده از لب‌هاشون پرید چون قایق سنگین شده بود و داشت غرق میشد. برادرها برای اولین بار ترسیدند و با عجله مشغول خالی کردن آبا شدند. برادره بزرگتر گفت ما نباید بترسیم. این رو خودمون خواستیم. برادر کوچکتر سری تکان داد و چیزی نگفت. اونها مرگ رو با شجاعت پذیرفتند. در همین موقع روی موج‌های در دریا قایقی بزرگ و عجیب دیدند. که از سنگ تراشیده شده بود درون قایق عجوزه نشسته بود که موهای بلندی داشت و بعد دهشیانه اونها رو به بازی گرفته بود او به جای پارو از بیل برای روندن قایقش استفاده میکرد و با مهارت قایق رو میون موجها هدایت میکرد عجوزه با صدایی بلندتر از هیاهوی طوفان و موج دریا گفت اگه من شما رو به سلامت برگردونم به من چی میدید برادر کوچیکتر گفت از ما چیزی درخواست نکن ما پسرهای پادشاهیم برادر بزرگتر گفت اگه پدرمون از ماجرا آگاه بشه به تو پاداش خوبی میده جادوگر جواب داد من نه میخوام و نه نقره برادر کوچیکتر فریاد زد پس چی میخوای؟ زود داشت بگو جادوگر فریاد زد باید به من قول بدید آخرین بچه ای رو که مادرتون به دنیا میاره به من بدید. باید قسم بخورید که وقتی من به اونجا اومدم بچه رو به من بدید. دو برادر با هم فریاد زدند هرگز. وقتی که قایق بیشتر در آب دریا فرو رفت اونها گفتند خب باشه ما قول میدیم اما باید بدونی که مادر ما پیرتر از اونه که صاحب فرزند دیگه بشه. جادوگر فریاد زد این مهم نیست. بعد قایق خودش رو به نزدیکی اونها برد و گفت سر این بیل رو بگیرید و به طرف من بیاید. دو برادر یکی پس از دیگری سر بیل رو گرفتن و خودشون رو به قایق پیرزن جادوگر رسوندن. جادوگر با مهارت فوقالعادهای قایق رو هدایت کرد و از میون موجهای خشمگین و کفالوده دریا گذروند و به سوی ساحل برد. به محض اینکه که برادرها به خوشگی رسیدن از پیرزن تشکر کردند و به محلی که آسفالته رو بسته بودن رفتن و بدون متلی به قصر برگشتن. اونها در باره این ماجرا با هیچ کس حرفی نزدند، فقط گاهی که با هم تنها میشدند به یاد اون میافتندند و از جادوگر پیری که اونها رو نجات داده بود حرف میزدند. اونها همیشه به هم میگفتند عجب قول و قرار مسخره ای. مادر ما اونقدر پیره که دیگه هیچ کس نمیتونه بچه‌ای به دنیا بیاره. و هردو از این حرف می‌خندیدند اما برادرها اشتباهم کردند چون مادرشون به زودی پسر دیگری به دنیا آورد برادرها با هوشری و دقت بسیار از برادرشون مواظبت می‌کردند و هیچگاه اون رو تنها نمی‌ذاشتند چند سال بعد کشور همسایه به پادشاه اعلان جنگ داد اما پادشاه پیر شده بود و نمیتونست ارتش خودش رو در جنگ رهبری کنه به زودی جنگ شروع شد و دو برادر که مجبور بودند جنگ نمیدونستان چی چیکار کنند و برادرشون رو به چه کسی بسپرند برای همین خیلی ناراحت بودن برادر بزرگتر گفت برادر برادر ما اونقدر بزرگ شده که بتونه خودش مواظبت کنه اون در تیراندازی و سوارخری مهارت داره و در نبود ما دیگه خطری اون رو تهدید نمیکنه. به این ترتیب برادرها راهی میدونه نبرد شدن و برادر کوچکتر در کاخ موند. اون هنرهای رزمی رو فرا می گرفت و تمام اون چیزهایی رو که برادرها به اون گفته بودند عمل میکرد او مدتها منتظر اومدن برادرانش بود تا به اونها نشون بده که چقدر در تمرینهاش پیشرفت کرده اما روزها و ها و سالها گذشت و اونها نیومدند تا اینکه در اوج ترین روزهای دریا جادوگر پیر به قصر اومد و شاهزاده رو در استبت پیدا کرد از پا با دیدن اون ترسیدند و شیهه کشیدند و شاهزاده اونها رو آروم کرد پیرزن با انگشته لاغر و درازش به اون اشاره کرد و گفت تو مال منی من اومدم که تو رو ببرم شاهزاده خندید و با خودش فکر کرد حتما پیرزن عقلش رو از دست داده اون وقت پرسید چرا من باید با تو بیام؟ جای من اینجاست و ممکنه روزی هم پادشا بشم جادوگر پیر گفت تو باید با من بیای برادرات در اون طوفان وحشتناک قول دادن که تو رو به من بدن یک قول شاهانه اونها ممکن نیست که زیر قولشون بزنند و قولشون رو زیر پاشون بذارن اون وقت بازوی اون رو گرفت و با دو اسب از اسب خارج شدند. شازده هر کاری کرد نتونست بازوی خودش رو بیرون بکشه و جادوگر گفت هر چقدر تعلق کنی فایده ای نداره ده جمون فهمید که از چنگ جادوگر پیر نمیتونه فرار کنه. اونها از تپه ها و مزاره گذشتند و از میون جنگل تاریک راه خودشون رو باز کردند تا به ساحلی رسیدن. قایق جادوگر در اونجا بود. جادوگر پیر گفت حالا باید به من قایق سواری کنی همونطور که برادرات یک بار این کار رو شازده کمی مقاومت کرد اما بعد مجبور شد که سوار قایق بشه ناگهان قایق تکانی خورد و شازده به دریا افتاد پیرزن با عجله به طرفش فرید و پارو رو برداشت و با مهارت اون رو به داخل قایق کشوند شازده به بادبان کهنه نگاه کرد و با ترس پیش خودش فکر میکرد که این بادبان کهنه چقدر میتونه در مقابل طوفان مقاومت کنه در این فکر بود که ناگهان چشمهاش بسته شد و به خواب رفت جادوگر پیر هم با خنده شیطانی و یک چشم به خواب رفته بود وقتی شازده از خواب بیدار شد خیلی تحجب کرد اون در قایق نبود بلکه در اتاقی بزرگ بود که پنجره رو به دریا باز می جادوگر پیر با اون خنده شیطانی در راه رو ایستاده بود و اون رو نگاه میکرد. شازده فریاد زد اجازه بده من برم پیر زن پدر من است. اون الان با سرباتاش به دنبال من می‌گردند. پیر زن یک گونی رو به داخل اتاق کشید و گفت بیا. بیا اینو بلند کن و حسابی تکونش بده. دوست جوان من. اون به اطاعت کرد و گونی رو تکون داد. ناگهان اتاق پر از پر شد. پرها در اطراف شازده شناور شدند و روی سرسورت اون میشستند و هر کدوم از پرها رو که برمیداشت پر دیگری به جوی اون میشست. جادوگر با لبخند فریاد زد تا اومدن شب باید پرها در گونی باشه. شازه نالید. این کار غیر ممکنه. من چطور میتونم این پرها رو توی گونی بریزم؟ اما جادوگر رفته بود. شازه سعی میکرد پرها رو بگیره اما پرها در هوا شناور بودند و از این طرف به اون طرف میرفتند. سرانجام ناامید شد و دست از کار کشید و در گوشه نشست و صورتش رو در میون دستهاش پنهون کرد. مونده بود متل که چیکار کنه و چیکار نکنه ناگهان صدایی رو شنید به طرف صدا که برگشت کبوتر سفید و زیبایی رو دید که پشت پنجره نشسته بود شازده پنجره رو باز کرد و پرنده به داخل اتاق پرید بعد بدون هیچ حرفی بالهاشو تکون داد و پرها رو درون کیسه ریخت پرها به طرف کیسه می رفتند و یک به یک داخل اون می می‌شدند کبوتر تا شب تمام کارهای شاهزاده رو انجام داد شازده از کبوتر قدردانی کرد ناگهان کبوتر به دختری زیبا با موهای مشکی و چشمهای آبی تبدیل شد دخترک گفت من هم به وسیله جادوگر تله شدم تو باید قول بدی هر کاری رو که من میگم انجام بدی اینطوری ممکنه که هر دوی ما نجات پیدا کنیم شازده با نجوا گفت چیکار باید بکنم تو کی دوباره تبدیل به پرنده میشی؟ دخترک گفت صبحگاه و بعد ادامه داد با دقت گوش کن وقتی جادوگر پیر اومد و فهمید که کارات رو انجام دادی خشبی میشه اما خشم و ناامیدی خودش رو نشون نخواهد داد و از تو قددانی میکنه و از تو میخواد که با آزادی کامل در پیش اون بمونی تو هم باید بانمود کنی که قبول کردی از اون بخوای که آرزوت رو برآورده کنه شازده پرسید چه آرزویی باید بکنم؟ تنها آرزوی من که تلسم تو باطل بشه دخترک در جواب شازده گفت تو باید به جادوگر بگی که من شازده خانومی رو میخوام که مثل کبوتر سفید پرواز میکنه بعد پاکتی رو که در اون پارچه ابریشمه نازک که گرمز رو گذاشته بود به شازده داد و ادامه داد من این رو به جایی از بدنم گره می زنن. تا به این ترتیب تو بتونی من رو بشناسی. وقتی که اولین روشنایی روز در اومد دختر کبوتر تبدیل شد و از پنجره بیرون پرید و پرواز کرد در همین موقع جادوگر از راه رسید و چون کیسه پر از پر رو دید ناراحتی خودشو پنهون کرد و شازده گفت من اونچور که گفته بودی انجام دادم حالا اجازه بده از اینجا برم. جادوگر با تمسخور گفت پیش من بمون. من به تو آزادی میدم. تا هر کاری دیلت میخواد بکنی. فقط پیش من بمون. و از من نگهداری کن. چون من جستو کسی رو ندارم. در عوض تمام سروتم بعد از مرگم به تو میرسه. شازده به آرومی سری تکان و گفت من به شرطی قبول میکنم که تو شازده خانومی رو که همچون کبوتر سفید پرواز میکنه به من بدی جادوگر که هیلهگرانه به اون نگاه میکرد با ملایمت گفت من درباره کبوتر سفید چیزی نمیدونن شاهزاده یم اینجا نیست اما تو میتونی به جای اون علاقم کوچولوی خاکستری منو برداری جادوگر شاهزاده رو به جنگل برد و علاقم کوچولوی زیبایی رو که به آرومی علف میخورد، به اون نشون داد شازده هدیه جادوگر رو قبول نکرد اما ناگهان چشمش به سمای اولاق افتاد که نخ نازک ابریشمی قرمزی به دور اون پیچیده شده بود اون گفت باشه باشه من اولاق کوچولوی خاکستری رو برمیدارم. جادوگر که چهرهش خیلی وحشتناک شده بود از چشمش خون میبارید فوری روی اولاق پرید و با فریادهای وحشیانه که میکشید از اونجا دور شد شازده با تعجب به اون نگاه میکرد و منتظر موند و در همین موقع جادوگر در حالی که یابوی پیرو بیدندون رو به دنبال خودش میکشید به اونجا اومد و به شازده گفت من میتونم این یابو رو به تو بدم. جادوگر نمیتونست این یابوی بیدندون رو به جای اون علاق زیبا قبول کنه اما نگهان چشش به دوم یابو افتاد که پارچه نازک ابریشمی قرمزی به اون بسته شده بود پس فوری گفت باشه من قبول میکنم جادوگر یابو رو به شازده داد و، ناگهان یابو به دختری زیبا تبدیل شد و جادوگر وقتی شازده رو دید فهمید که کارش دیگه تموم شده و قدرت جادوییش با نیروی دو جوان شکسته شده اون وقت در حالی که دست لاغرش رو تکون میداد و دیوانوار فریاد میکشید به طرف دریا دوید و بدون لحظه تردید در آبهای خاکستری دریا شیرجه رفت و های دریا اون رو به کام خودشون کشیدند همونطور که در پایان تمام های خوب اتفاق میفته شازده به همراه دختر بهرا افتادند و پس از جستجوی فراوون راه خودشون رو پیدا کردند اونها به قصب بازگشتند و با یکدیگر ازدواج کردند و در اون سرزمین کسی به خوشبختی اونها پیدا نمیشد بله دوستان عزیز و همراهان همیشگی این هم آخرین داستان از کتاب افسانهای جادوگری که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. سپاسگزارم که تا به انتهای این کتاب و آخرین داستان این کتاب با من مثل همیشه همراه و همسفر بودید. و امیدوارم که با داستانهای جدید دیگری در خدمت شما عزیزان باشم. روز و روزگارتون خوش، ایامتون بکام، مراقب خوبی های خودتون باشید. خدا یا رو نگهدار شما. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صی نشانی کانال تلگرامی T نقط می/مهران دوستی، T نقط me d o u نشانی ویبلاگ ما M-E-H-R-A-N D-O-U-S-T-I b l o g f -A